مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد ششم بازخاندن شهزاده نسوه را از بحر دلاکی بعد از استحکام توبه و قبول توبه و بهانه کردن او و دف گفتن بعد از آن آمد کسی که از مرحمت دختر سلطان ما می خاندد دختر شاهت همه خاند بیا تا سرش شویی کنون ای پارسا جستو دلا که نمی خواهد دلش که بمالد یا بشوید با گلش گفت رو رو دست من بیکار شد وی بی نسوه تو کنون بیمار شد راو کسی دیگر به جو اشتاب و تفت که مرا والله دست از کار رفت. با دل خود گفت کس حد رفت جرم از دل من کی رود آن ترس و گرم. من بمردم یک ره و باز آمدم. من چشیدم تلخی مرگ و آدم. توبه کردم حقیقت با خدا، نشکنم تا جان شدن از تن جدا. بعد آن مهنت کرا بار دگر، پا روت سوی خطر، الا که خر. حکایت در بیان آنکه که کسی توبه کند و پشایمان شود و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید، در خسارت ابد افتد. چون توبه او را ثبات و قوت و حلاوت و قبول مدد نرسد، چون درخت بیبیخ هر روز زردتر و خشکتر بود. نعوذ بالله، گازر بود و مرورا یک خری، پشت ریش، اشکم توهی و لاغری، در میان سنگ لاخ بیگیا، روز تا شب به نوا و به پناه. بحر خوردن جز که آب آنجا نبود، روز و شب بود خر آن کور و کبود. آن حوالی نیستان و بیشه بود. شیر بود آنجا که صیدش پیشه بود. شیر را با پیل نر جنگ افتاد. خسته شد آن شیر و ماند از استیاد. مدت ایوا ماند زان از شکار. بینبا ماندند دد از چاشت خار. زان که باقی خار شیر ایشان بودند. شیر چون رنجور شد تنگ آمدند. شیر یک روباه را فرمود رو مرخری را بهرمن سیاد شو. گرخر یابی به گرد مرخزار رو فسونش خوان، فریبانش بیار. چون بیابم قوت از گشت خر پس بگیرم بعد از آن سیده دیگر. اندکی من میخورم باقی شما، من سبب باشم شما را در نوا، یا خره یا گاو بهر من بجوی، زان فسونهایی که میدانی، بگوی، از فسون و از سخنهای خوشش، از رهش بیرون کن و اینجا کشش، تشبیه کردن قطب که عارف واصل است در اجری دادن خلق از قوت مخفرت و رحمت بر مراتب که حقش الهام دهد و تمثیل شیر که دد اجریخار و باقیخار ویند بر مراتب قرب ایشان شیر، نه قرب مکانی بلکه قرب صفتی و تفاصیل این بسیار است، بله الهادی قدب شیر و سید کردن کار او باقیان این خلق باقی خار او تا توانی در رضای قدب کوش تا قوی گردد کند سید وحوش چون برنجد بینوا مانند خلق کس اقل است جمله رزق حلق. زن که وجد خلق باقی خرده اوست. این نگه دار ار دل تو ساید جوست. او چو اقل و خلق چون آزای تن بسته اقل است تدبیر بدن. ضعف قدب از تن بود از روح نی. زاف در کشتی بود. در نوح نی. خود آن باشد که گرد خود تند. گردش افلاک گرد او بود. یاری ده در مرمه گر غلام خاص و بنده گشتیش یارییات در تو فضاید درو. گفت حق ان تنصر الله تونسرو همچو روبه سعید گیر و کن فدیش تا عوز گیری هزاران سید بیش رو بهانه آن سید مرید مرده گیرد ساید کفتار مرید مرده پیشه او کشی زنده شود چرک در پالیز روینده شود گفت رو به شیر را خدمت کنم هیله سازم ز عقلش بر و افسونگری کار من است کار من دستان و از ره بردن است از سر کوه جانب جو می شتافت آنخر مسکین لاغر را بیافت پس سلام گرم کرد و پیش رفت پیش آن ساده دل درویش رفت گفت چونی اندر این صحرای خشک در میان سنگ لاخ و جای خشک گفت خر گر در غمم گر در ارم قسمتم حق کرد و من زان شاکرم شاکر گویم دوست را در خیر و شر زان که هست اندر قضا از بد بتر چون که قسام اوست کفر آمد گله صبر باید، صبر مفتاح و غیرحق غیر حق جمعه عدویند، اوست دوست با عدو از دوست شکوت کی نکوست ذاد حد نخواهم انگبین گبین زان که هر نعمت غمی دارد قرین حکایت دیدن خر سقای بانوی اسبان تازی بر آخر خاص و تمنا بردن آن دولت را در موعظه آن که تمنا نباید بردن الا مغفرت و عنایت که اگر در صد آن رنج چون لذت مغفرت بود همه شیرین شود. باقی هر دولتی که آن را نازموده تمنا می بری با آن رنج قرین است که آن را نمی بینی. آنکه از هر دام دانه پیدا بود و فخ پنهان تو در این یکدام دام مانده ای تمنا می بری که کاش که با آن دانه ها رفتمی، پنداری که آن دانه ها بیدام است. بود سقای را یک خری، گشته از مهنت دوتا چون چند بری، پشتش از بار گران صد جای ریش آشق و جویان روز مرگ خیش جو کجا؟ از کاه خشک و نی در عقب زخمی و سیخ آهنی میر آخر دید او را رحم کرد کاشنای صاحب خر بود مرد پس سلامش کرد و پرسیدش زهال که از چه این خرگشت دوتا همچو دال گفت از درویشی و تقصیر من که نمی یابد خودین بسته دهن گفت بسپارش من تو روز چند تا شود در آخر شهر زورمند خربد و بسپرد و آن رحمت پرست در میان آخره سلطانش بست. خر سو و مرکب تازی بدید. بانوا و فربه و خوب و جدید. زیر پاشان روفته آبی زده. که به وقت و جو به هنگام آمده. خارش و مالش مرسپان را بدید. پوز بالا کرد. کی رب مجید نه که مخلوق توام گیرم خرم از چه زار و پشت ریش و لاغرم شب ز درد پشت و از جوع شکم آرزومندم به مردن دم بدم حال این اسبان چنین خوش بانوا من چه مخصوصم به تعذیب و بلا ناگهان آوازه پیکار شد تازیان را وقت زین و کار شد زخمهای تیر خوردند از ادو رفت پیکانها در ایشان سو به سو از غذا باز آمدند آن تازیان اندر آخر جمله افتاده ستان پایهاشان بسته محکم با نوار نعلبندان ایستاده بر قطار میشه کافیدند تنهاشان بنیش تا برون آرند پیکانها زرش آنخر آن را دید و میگفت ای خدا من به فقر و عافیت دادم رضا زان بیزارم و زان زخم زشت هر که خواهد عافیت دنیا بهشت ناسندیدن روباه گفتن خر را که من رازیم به قسمت گفت روبه جستن رزق حلال فرض باشد از برای امتصال عالم اسباب و چیز بی سبب می نیاید پس مهم باشد طلب و من فضل الله است امر تا نباید غصب کردن همچون امر گفت پیغمبر که بر رسق ای فتا در فرو بستست و بر در قفل ها جنبش و آمد شده ما و اکتصاب هست بر بران قفل و حجاب. بیکلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سنت الله نیست جواب گفتن خر روباه را گفت از ضعف توکل باشدان ورنه بدهد نان کسی که داد جان هر که جوید پادشاهی و ظفر کم نیاید لقمه ای نان ای پسر. دامدد جمله همه اکال رزق، نه پای کسباند نه هممال رزق. جمله را رزاق روزی می دهد، قسمت هر یک به پیشش می نهد. رزق آید پیش هر که جست. جوست، رنج کوشش ها زبی سبری توست جواب گفتن روباه خرام گفت روبه آن توکل نادر است. کم کسی اندر توکل ماهر است. گرد نادر گشتن از نادانی است. هر کسی را کی ره سلطانی است. چون قناعت را پیمبر گنج گفت، هر را کی رسد گنج نهافت؟ حد خود بشناس و بر بالا مپر تا نیفتی در نشیب شور و شر. جواب گفتن خر روباه را گفت این معکوس میگویی بدان شور و شر از طمع آید سوی جان. از قناعت هیچ کس به جان نشد. از حریصی هیچ کس سلطان نشد. نانز خوکان و سگان نبود دریغ. کسب مردم نیست این باران و میغ. آنچنان که آشقی بر رزق زار هست عاشق رزق هم بر رزق خار. در تقریر معنی توکل، حکایت آن زاهد که توکل را امتحان می کرد. از میان اسباب و شهر بیرون آمد و از قوارع و رهگذر خلق دور شد و به بون کوه محجور مفقود در غایت گرسنگی سر بر سر سنگ نهاد و خفت. و با خود گفت توکل کردم بر سببسازی و رزاقی تو و از اسباب منقطع شدم تا ببینم سببیت توکل را آن یکی زاهد شنود از مصطفى که یقین آید بجان رزق از خدا گر بخواهی ور نخواهی رزق تو پیش تو آید دوان از عشق تو از برای امتحان آن مرد رفت در بیابان نزد کوه خفت تفت که ببینم رزق می آید به من تا قوی گردد مرا در رزق زن کاروان راه گم کرد و کشید سوی کوه آن ممتحن را خفت دید گفت این مرد این طرف چون است اور در بیابان از ره و از شهر دور ای عجب مرده است یا زنده که او می نترسد هیچ از گرگ و عدو آمدند و دست بر وی می زدند قاصدان چیز نگفت آن ارجمند هم نجنبید و نجنبانید سر وا نکرد از امتحان هم او بسر پس بگفتند این ضعیف بی مراد از مجاعت سکت اندر افتاد نان بیا و در دیگ تعام تا بریزندش به حلقوم و بکام پس بقاست مرد دندان سخت کرد تا ببیند صدق آن میعاد مرد رحمشان آمد که این بس بینواست و از مجاعت حاله که مرگ و فناست کارد آوردند قوم اشتافتند بسته دندانهاش را بشکافتند ریختند اندر دهانش شوربا می فشردند اندر و ها. گفت ایدل دل گرچه خود تن میزنی راز میدانی و نازه می کنی گفت دل دانم و دانم و قاصد می کنم رازق الله است بر جان و تنم، امتحان زین بیشتر خود چون بود، رزق سوی سابران خوش می رود. جواب دادن روبا خر را و تحریز کردن او خر را بر کسب گفت روبا این حکایت ها بهل. دستها بر کسب زن. جهدل مقل. دست دا دستت خدا کاری بکن. مکسبی کن. یاری یاری بکن هر کس در مکسب پامین حد یاری یاران دیگر می کند زن که جمله کسب ناید از یکی هم دروگر هم سقا هم هایکی این بهنبازی به است عالم برقرار هر کس کار گزیند. زفتقار، افتقار در میانه شرط نیست راه سنت کار و مکسب کردن است جواب گفتن خر روباه را که توکل بهترین کسب هاست که هر کس محتاج است به توکل که ای خدا این کار مرا راست آر و دعا متزمن توکل است به توکل کسب است که به هیچ کسب دیگر محتاج نیست الا آخر گفت من به از توکل بر ربه می ندانم در دو آلم مکسبه. کسب شکرش را نمی دانم ندید، تا کشت شکر خدا رزق و مزید. بحثشان بسیار شدند در خطاب، مانده گشتند، از از جواب بعد از اون گفتش بدان در مملکه نهی لا به عیدی تحلکه صبر در صحرای خشک و سنگ لاخ احمقی باشد جهان حق فراخ نقل کن زینجا بسوی مرغزار چ سبزه سبز گرد جوی بار مرغزار سبز مانند جنان سبز رسته اندر آنجا تا میانخوررممان حیوان که او آنجا شود اشتران در سبز ناپیدا شود. هر طرف، در وی یکی چشمه روان، اندر و حیوان مرفع در امان از خری او را نمی گفت ای لعین، تو از آن جایی چرا زاری چنین؟ کو نشات و فربهی و فر تو، چیست این لاغرتن مستر تو؟ شرح راوزه گر دروغ و زور نیست پس چرا چشمت از او مخمور نیست این گدا چشمی و این نادیدگی از گدایی توست نز بگلر بگی چون ز چشم آمدی چونی تو خشک، و تو ناف آهوی کو بوی مشک زان که میگویی و شرحش میکنی چون نشانه در تو نامد ایسنی پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند